اللهم صل على محمد سیره و سیره او بر خبر سنه و از کردیم اشکالی که بیشتر در کلمات تعلم آمده معارضه این سیره و آیات شد که این سیره باید ثابت بشه اگر سیره ثابت شود، خطاً با اون آیات تنافی نداره اشکالاتی رو که در سنه مختلف وارد کردن به نظر ما وارد نیست بله کلام در خود ثبوت سیره است که آیا سیره در اغلا هست و حجیت خبر سره تعد بودن یعنی به عبارت اخراب چون اصل اولی تیش اغلا علم و وصوق و اطمینان و به اصطلاح قطع علم و عرفی و اینجور مطالبه اگر خبر سقه مفید وصوق و اطمینان و علم و عرفی باشه اینجای بحث نیست جای صحبت نیست جای صحبت است که مفید وصوق و اطمینان نباشه حالا به جهات مختلفی که ممکنه در خبر سقه پیدا باشه طبعا به خلاف هم نیست چون اونجایی که یقینه به خلاف داشته باشیم خب دیگه قطعا سری اغلاب و سیر متشبعه بر نیست دیگه نیست آیون دقیقه رو که مرموم استاد اعراض مشهور رو کاسر سفت سند نیم اما اگر اعراض به حدی باشه که یقین داریم به بطلان خبر دیگه جای که به خبر نیست اگر دردیه دیگه که ایشون می‌فرمایین این خبر با اینکه صمیحه چون اصحاب اعتراض به کل ازش کردن تسالم بر اعتراضین رواش کرده ایشون در این جور موارد اون خبر رو عمل نمی‌کنه. این مراد ایشون این است. اما نه اگر فرض به این درجه نرسید. به درجه و اصحاب بر نفی خبر نرسید ایشون عمل میکنن به همین جهت سیره بحثی که در اینجا هست که آیا واقعا چنین سیری ای وجود داره اصولا ما در علم منقول خودمون چیزی که برای ما نقل میشه آیا واقعا یک سیری اغلا هست که چیزی که شن او طریقیت صرفه خود دفت رو مثل قول نیست مثل قول قاضی نیست خبرواهر شعن او طریقیت صرفه محل بحث رو دقیقه بکنیم این طریقیت صرف اگر به لحاظ حال راوی و به ساقت راوی نه و را ایجاد بکنه اونی که شعنش طریقیت صرفه طریقیت صرف موجب به حدوث مسلحت نمیشه مسلحت ایجاد نمیکنه. خالیده صرف غیر از تریحیات چی میند آیا واقعا یک سیره تعبدی از قولا هست بدون اینکه جهت او روشن بشه و اینکه بچین خبر عمل بکنی به نظر ما همین شروع اجازه حیرت و توضیحش در مقصد گذاشته از چندین روز خاطر تکمیل بحث از کدی برسر هم قبول بکنی ادهی از اغلا به این کار عمل میکنن چون دلیلش اینه که هم طلاع خوبی معتقدن دیگه نمیشه که این مطلب کلا موجود نداره ادهی از مزرگان معتقدن من اون به درجه اون وضوحی رسیده باشه که بسیار این اعتماد در احکام قانونی بکنه این اینش روشن نیست فرصم مثلا 45 اصلا فرصم 55 درصد از اغلا همینطور که مردم استاد پر بودن پس به خبر سقه تب عمل بکن به نظر ما این مقدار کافی نیست این پنجه و پندر سال هم کافی نیست باید برسه به یک عمل واضح مثل این که ما یا آب یعنی جا این شیء معین خارجی کتاب یعنی این شیء معین باید به این درجه از وضوح رو برسه خود روی ده در, در سیر و تشکیه به حجیخ زباطر کردم درسته یعنی سیره واضح روشن قطعی با درکه اگر به این درجه از حجیت داره تا به این درجه است مجرد اینکه اکثریت نصری در مطلب باشه اون هم کافی نیست و انصافا با مراجعه به شواهد عقلایی که مطلبی ثابت نیست که درمواصله ترونه توضیحش رو اگر بخوام بخوایم به صورت اروام و آمار حضر بکنیم ببینید در ادراکات منقول ما فس به حدود الان به حساب زمان فرق میکنه. زمان ما که الان مقدار زیادیش از حد نقل خارجه چون عکس میذارن تصویر میذارن تصویرش توی تلویزیون میبینیم فیلمی شید یه خوب یا بر اساس کسف سفر رفت آمد انها اطلاع یه مقدارش از حد نقل خارجی. یک مقداریش هم فسنون مثلا ده درصد درصد زمان ها مقدار زیادیش هم مقرونه به شواهده خب این هم محل کلام نیست یک مقداری هم خود رساقت راوی وصوب میاره این هم محل کلام نیست اینا هی محل کلام بیشتر. یک مقداری شاید رساقت راوی هست وصوب نمیاره فسنون 20 زن درست. این محل کلام پس این وصالت راوی تا درصد برای ما وصوف و ورد به 90% که حجت نرسید محل کلام اینجاست این 60% را چطور جمران بکنیم تا 90% این کل به کلام بینه یعنی اگر ما بخوایم الان رو آمار البته خب معلوم هم به زمان این مطلب فرمو کنه هم به فرهنگ ها به تمدون ممکن در یک کشور مثلا معین اعتمادشون بر خبر خیلی زیاد باشه در یک کشور دیگه نه اعتمادشون بر خبر کم باشه به هر حال اون صحبتی که هست اینجاست اون بذار بفرمایید صحبتی که هست اینه که اگر ما با مجرد رسافت راوی به حد حجیت عقلایی که 90 درصد در نرسید این رو حالا یا به خاطر اینکه مثلا خود متن خبر مشکل داره یا به خاطر اینکه عمل نکردن به خاطر شواهدی که خودمون برخلاف خبر داریم بحث در اینجاست. کما اینکه بحث در اینجا الان چون سیره مختلف مختلفه بحثی که ما در اصول داریم سیره اوغلا در اعتبارات قانونی چون مسلم خبره واحد ثقه باشه دو تا ثقه، پنج دو در مسائل علمی مثل فیزیک و شیمی و طب و نجوم ها قتن اعتبار نداده. اونجا اصلا جای بحث نظری واحد نیست. قباله نیست ممکن است مطلبی رو ده ها کتاب طبی نوشته باشن لازم شما فت آزمایش میکنین به اون نتیجه نمیرسین. این هر این ربطی به اون نداره. پس محل کلام فعلا در سیر عقلا اینجاست. اون مرحله ای که تأثیر داره در تجوزه بود. خودییت مراد این و محبوظ کلام این است که خبر به نفسه طریق صرف اون دقیق می کنیم. خود به ساقت رایی هم که یک شاهد ایجاویی تا بیش از شهر درصد اختضا نکن چطور ما این رو برسونیم به 90% آیا یک تعبود خاص اغلایی است این تعبود از کجاست این بحث تماما زرینه چون اون طریقیتش خودش شهر زرزن این که مرخبر طریقیت خبر خود خبر که پیلسته چیزی نداره با به زمینه استفاد راوی شد شهر زرزن این باید یک نکته ای بشه اضافه بشه تا برسونه به نرد برسن تفسیر ما از وجیه اینه اون نکته ای که غالبا در مثل خبر اضافه میشه فرض کنه اختلال نظامه اصوه اگر ما به خبر استقه عمل نکنیم در اصوه هرچ واقعی میشه اختلال نظام لازم می. یا مثلا در فقه اگر ما بشه به خبر استقه عمل خروج از دین لازم میان تعطیل شریعت لازم دقیق کردیم چون ما غیر خبر رایی نکنیم اگر بشه به اخبار عمل نکنیم خروج از دین لازم میان این همون نقطه است که ما در تفسیر حجی از عرض کردیم یعنی اون نقطه ای که آیان میخوان ادعا بخوند البته آیان ظاهره بازشون که مجمل ادعا کردن مرمومه آهالی ها گفته به مقتضای فطرت انسانی و جبلهی که مرتکل رو در از انسان احاله یه دیگه امر مجهول دادن به نظر ما چون ما هم جزء سیر هستیم امر مجهولی وجود نداره فطرت اغلایی و جبرله مرتکزه چیز خاصی رو اعتقاد نمیکنه همون نظام اسلحه و نظام صالح در جامعه یا اختلال نظام در یک مرحلهش چون است که جامعه رو ما او دو تفسیر میتونیم بکنیم دو برخورد یکی حده اقلی که جامعه به هم نخوره اختلال نظام باشه یکی که حده اکثری که جامعه روش بکنه و فوق العاده در درجات عالی روش قرار بگیره به نظر ما در هر دو مرحله اختضا نمیکنه که خبر ثقه رو بدون شواهد قبول بکنه. نکته اینه. وها حدا نسبت به شریعت اگر ما مثلا در مجموعه اخبار ما فرض کنیم مثلا 20 درصد از در اخبار ما خبر استقه هست و شواهد تاییدش نمیکنه مثلا ایراد در صاحب یا مصادرش شواهد تایید نمکنه، اسقاط اینها منشأ نمیشه که خروج از دین لازم بیاد تعلیل شریعت. سر بشن اونی که ادیه از در کار رو بهترین دلیل برشه وقوعه شه ادیه زیادی از مقال ما در این که خبر عدل بلکه گوی میشه خبر خیلیم سریعه فوق العاده یه معضله که اعراض میتونن هیچ مشکل ده میار مرموی ناینه اعراضی داشتن رضوان الله کلم از داد سه حتن از داد رحمه همسی تر بشه مشکلش بیشتر رحمشو اشکال مراد اینه که اگر سند خیلی سریع شد درجه اتا عالی لیکن با تمامی این درجه ها اصاب اعراض کردن همچی بخواست سهتش بالا با الازه اصاب مشکلش بیشتر، مشکل تندرده بیشه که خم کسی طور میشه این روایت با این همه سند عالی درجه یه من ازالک اصاب اعمال نگرم من اینکه مشکل خیلی زیاده کلم از لاد سهت هم از لاد وحن هم از عبارت م هر چی ساهیل تر باشه مشکلش بیشتر، یعنی که مشکلش کم میشه، مشکلش بیشتره. چرا چون این درجات عالی صحت و معذله اقراف داره. خاطر مشکل بزرگی هست که معلومه سین چیزی. فی حد اناس. خلاصه بحثی که در اینجا شد اینه که انصافش این سیبیل رو که آن ادعا میکنن به مختزای فطرت جبله ارتكاز این ثابت نیست اصولا این برخور با سیر اوغلایی درست نیست سیر اوغلایی چون رو در سیر اوغلایی ما هم هستیم و ما هم دورمون فعال نه انفعالیه این طور نیست که ما بشیم سیره اوغلایی نقل بکنیم ما این سیره باید ما خودمون ببینیم تو این سیره زندگی بکنیم تو این سیره اعتماد بکنیم این مشکل فاره و چیزی که بخوام بگم مچهول و مبهم و حالت تعبود اصولا اغلا تعبودی ندارن یعنی اصلا نقطه اغلایی نه بخواهیم از این نکات شرک در این نکات چهی هست اما در نکات اغلایی تعبود ندارن به این معنا یعنی مطلبی رو نفهمم و باز بگم نه بله بعضی از مطالع در سیر اغلایی تعبدیست نه به معنی کلان تو زهن ما مثلا اگر مجازات ها معین شد مجازات رو میشه فرقان عوض شدن یا قاضی عوض کنن مجازات دیگه در قانون انجام میدونن بینید از توقیفی اصطلاح توقیفی غیر از تهم بوده همون مجازات رو نگاه میکنی قوانین فهم میکنن چرا؟ چون سعی میکنن بشن یک رابطه بین جرم و مجازات پیدا بکن ممکن مثلا بگن از کسی این کار کرد مثلا مثلا زمان ما جد... چک بی هر کشی مجازات شیش ماه زندانه بعد بررسی میکنن پس کن تو جامعه میبینن هنوز چک بی محل مشکل داره میبینن این شیش ماه کافی نیست در این جلو این جور, جور گرفت شده یک سال یا میبینن نه زیاده شیش ماه خیلی زیاده مشکلات دیگه ایجاد کرد فرق زندان میشه قانون میاد تمام اینا رو حساب بکنه زن و بچهش بید سرپرست میشن مشکلات ایجاد میشه میکنن سه ما این هست که میان بین مجازات و بین جرم یک رابطه برقرار میکنن یک تناسب و سنخیت برقرار اما اگر مجازات در قانون معین شد دیگه قاضی نمیتونه از اون مجازات دست برده به بیم مرحاست اما این چون بیم تعبود نیست و نه اول این که غعلان اصلا تشعب تدوشه باشن کسی چکه بیو حتما حکم شش ماهه میگم هم دلرا داره این قرار سبحانه نگاه میکنن وضع جامعه رو نگاه میکنن آسا رو نگاه میکنن و آثاری که پیش میان میگن نه شش ماه کمه یا زیاده یا اصولا ما مشکل هر سو برداریم سجن اصلا نباشه تدی به جریمه نخلی، یا از ای هم نباشه. تبدیلش این نباشه. به اینا یه تناسوب خاص رو مراعات میکنند اما این نه به معنای این است که ما درک نکنیم ما هم یک جز اون هستیم و ازا اگر در قسمت در خیلی از قوانین عوض میشه بعد از مدتی بررسی میکنند نگاه میکنند که این قانون تأثیر خوبی نکرد قانون دیگر بزید در از این متعارفی که درکازه یه بیر پس این، اینی که ما خیال بکنیم سیر و غلامیه که یک امر مبهمیه که مجال تعبد پیدا میکنه تعبد یعنی نقطه او درد نشه این اصلا اصل این مفرد برای ما واضح نیست دو در اموری که طریقیت صرف داره نمیشه تصور کرد که اون رو جاها مثلا مسلحت ایجاد بشه مقصده ایجاد بشه چون طریقیت صرف داره اگر برناس مسلحتی باشه خوب دقیق کنیم یک امریز که خارج از اونه مثلا اختلال نظام لازم ناید تفصیل امر بر مکلف میتغیق کنیم امریز که خارج از اونه. اون خارج نگاه میکنیم تبه اون خارج حکم میکنیم در باب قطع از کردیم همینطوره انصافا اگر قطع خود نباشه اختلال نظام لازه یه قبول کردیم اما در باب خبر سقه اینطور نیست چرا؟ چون یک در موارد کردن قطعیه یک درز موارد خبر سقه را بوده ساقت وصوح میاره یک درز موارد غیر خبر سقه شواهدش هم معیده میبونه یک مقدار که خبر سقه هست و خبر سقه این مقدار اگر ما قبول نکردیم خبر سقه قبول نکردیم اصری لازم نمیان بباشه شد مطلب بدی هیچه ما آتفی این موارد که شواهد نیست دست نگهر تا تحصیل شوارد نکنیم تا شوارد پیدا بکنه عمل نکنیم تو این موارد که شوارد نیست شما عمل نکنیم الان به اصطلاح ما در این وحصول برگردیم به حصول عملیه نه تحصیل شریعت لازم میاد نه خروج عرضی لازم میاد نه قصر و حرج لازم میاد به عنوان عقلی نه عنوان اختلال نظام لازم میاد نه منافیس با جامعه رشدی آفته و جامعه حداکثری با هیچ مشکل نداره ما بیم محاضریم توی موارد ما و اقوال دلیل هیچ مشکل نداره ادهی دیار یعنی به ما خبر سقهی که اصحاب بش عمل نکرده دل میکنه عمل نکنه هیچ مشکل نداره که خوزرزین هم دازه نمی کنه شریعت هم ایجاد نمی کنه پس این مطلب رو این نهری که آیان مثل مرمو استاد، مرگوم آینی، ناینی، مرگوم آین آزیا کردند و به کردن که سیری اوحلا هست رو بشنیستن و در کلمات مرگوم آزیا و مرگوم آین ناینی ظاهرن مرادشون از رساقت حسود و حسود ظاهرن چون عملا ناینی اینطور طور نیست خب ناینی رحمه الله موانی و که داره که مرگوم در فقر واضحه اگر خبر سقیه اعلایی هم باش و اصحاب اعراض بکنن یشون قبول میکنه اعراض اصحاب رو ظاهرا مرادشون از اون اونجاییست که وصول پیدا بشه ظاهر فرمول ایمان امدالله بله مرموم استاد ملتظم هم اینه قبول کرد مرموم استاد قدس از الاسده به این مبنا ملتظم اگر خبر سقه بود حتی گاهی شده که یک نفر به اون خبر عمل کرده در بابی حلال یه موردی که ثبوت سمد اون خبر عمل کرد حتی هم از اون خبر ایراز کردن معذرشون سمد معتراب دو اصال عمل کرد این هست این مبناریشون داره. درسته اما توی کلمات مرموم نایمی و مرموم آرزی ها دیگر انصافا این دیده نمیشه یا حالا مرادتون همون حصول وصوبه یا یک چیز دیگری مثلا فرمودنشون بر ما روشن نیست لذا من است که مبانی رو کاملا با دقت بررسی کنیم پس این مطلب که سیره اوقلاب بر اینه این اصل سیر ثابت نیست روشن نیست این سیره هم در حد متشربهام روشن نیست در حد اوقلاب اختلال نظام مین در حد متشرعه خروج دین میگه این دو سفرش اینه نه در حد متشربه این سیر ثابته و نه در حد اوقلا این سیر ثابته که خبر استقرد به ما هو خبر فقط. بله اون چی که ما معتقدیم در سیر اقلائیه وساقت راوی مفید وسوق از خالب در ادید زیاده از ما و اصولا وساقت راویه که از شواهد مهم به هر حال ما معتقدیم که در متفاهم اقلائی مجموعه شواهد ایجابی و سلبی رو جمع میکنم نظر میکنم مقایسه میکنم چند تا شواهد ایجابی داره چند تا شواهد سلبی داره یک تعدلی بین اینها ایجاد میکنم بررسی میکنم اون وقته به اون شواهد حکم میکنم و اگرم شواهد نتیجه واضحی ننسید مثلا در فرق و اصول عملی رجوع میکنم در عرف هم یعنی ای مطلب ثابت نشد گفتن مثلا در کلان کشور چین چیزی شده یکی اون گفته ای که روزانه این نوشته اصل مطلب ثابت تر اینطوری میگه اما اینکه بگن چون یک نصرتی گفته و تاثیره هست ما تعبدن قبول بکنیم چین چیزی رو بدن در ما در اقلا ثابت نیست و معیار همونی است که ارزش کردیم و سابقا هم توضیح دادیم که خبر و شواهد دیگری توش وجود داره غیر از صفات راوی با اون مجموعه شواهد باید ساکیم ممکن است این سیره رو چه به نهره اقلال چه به نهره متشرعه به یک تقریب دیگری بدیم شبیه این تقریب و اون اینکه بله الان در رمان ما مثلا خیلی از موارد یا شواهد داریم یا قط پیدا میشه؟ یا اصلا به دنبال خبر نیستیم چون وضوع داره اما در مجموعه روایاتی که در احکام داریم اینطور نیست یعنی اگر به اصلاف بنا بشه به خبر ثقه در مجموعه احکام عمل نکنیم خبرهای خیلی غیر ثقه فرامانه نه اغلا این رو قبول میکنه نه متشقه قبول میکنن این تقریب این همون جزیه از تقریب ریل انصداده خلاسش برنگه برنگه برنگه اینسلات از وقت مثلا نتیجه شجیف زنه با این تقریب با مقدمات دیگه میگه نمجه خبر سره مثلا و به همین مناسبت که من می‌کنیم بعد از این تقریب سیره که استاد استازه کردن و مرموم ناینی و مرموم شیخ در اصایه مرموم شیخ چهار دیلن به عنوان تقریب دیل عقل آورده. و اول عقل که خب آروم میگم من, من اونجوری که در مصباح اولا ما اونا رو الان نمیخوریم چون احتیاجی بهش نیست الان توضیحش اون نکاتی که بر به ذیل علم مرجعش به علم اجمالیه من نقصه بکنم شما این نکته کلی رو هم شما دیگه خاطر یعنی ما میدونیم احکام داریم و راه وصول ما به احکام طبقه اون علم اجمالی و طبقه شواهد دیگری که داریم که نمیتونیم این بکنیم چرام بکنیم یا برگشتش میشه به حجیت خبر سقه برای این که از علم اجمالی خارج میشه یا برگشتش میشه به حجیت زن مثل مرحوم محقق قومی یا برگشتش میشه به احتیاط تبعیز در احتیاط که ازایی هم قابل پس این سیره رو سیره اغلایی و سیره متشبعه رو اضافه بکنید به علم اجمالی و اضافه بکنیم به این که راهی که ما الان داریم برای احکام همین روایت به هم. این رو اضافه بکنیم سیره مورد رو بید. و اصواف بکنیم حجیقه خبر است به سیره به این تقریب نگیم سیره کلا چون سیره اگر متغیریه مثلا ما الان در زمان ما ممکنه چهه درصد معلوماتی که الان دور از ماسته میبینیم اصلا قطعیه برای ما فیل میشیم میشیم, میشیم. به خبر نداریم کلا اما این حالت در حضاست و نبوده، این حالت در روایات ما نیست ما همچه رو نداریم که بطونیم هر سجا بکنیم اما هم برمیگرده به مسئله علم اجمالی و حجیت خصوص مثلا اخبار سه ها به قول مهنم صاحب مداره یا حجیت خبر سه شبیه کلام یعنی کلام مهنم اصلا همچه استاد به دلیل انصداد تماسط نکردن من عرض میکنم یه مجموعه رو ما هم بریدیم مجموعه اون چه که به اسم و حکم عقل آمده به... که یکیش دلیل رابعش انصداده چون تقریب عقل چهار تا عرض مرموشه دلیل چارم و تقریب چهارم انصداده یا مثلا سیر اغلارم به این معناه که اوغلا بگن ای که شما راه نذارین اخبار شما هزار سال قبل ها به شما رسیده شما دیگه راهی برای پیدا کردن حل راهتون بسته شده یا برگردیم همه به سری متشرعه ای که متشرعه شیعه میدونه اگه این روات مراجعه نکن راه دیگه نذار راه بسته شده اون علم اجمالی که شما داریم به صوغ احکام اون منشایی میشه که شما خصوص خبر دیگه قبول نکنید اخرها سابقا نمیشه. اولا دقت رو اگر ما مرادمون از دلیل عقلی بخواهیم اثبات بکیه یک قسم از خبر رو بکنیم این چیزی علمی نیست. اصولا درست نیست. سرشم اینه که دلیل عقلی نازر است. یعنی رفن اساسیش علم اجمالی است. علم اجمالی به احکام برمیگرده نه به طرق. مشکل کاری نه. یعنی شما علم اجمالی دارید که در مجموعی اون که الان در فتاوا موجوده یک مقدارش واقعی است و اگر بخواید به علم یا علمی عمل بکنید مقدار زیرش از دهی میرید یا خروج از شریعت لازم میاد یا مثلا اختلال نظام مثل ترتیب و قدر. پس علم اجمالی شما اصولا به احکام خورده وقتی علم اجمالی شما به احکام خورد نمیتونه به چیزی که طریق سرد علاقه داره کنید خبر طریق سرکه خبر چی دیگه ها نمی کنه؟ داره لذا اصولا دلیل عقلی می کنیم لذا ما نمی مخودیم عقلیه که اقامه شده در ما در چهارت دلیل بخورده می شود اون نکته فندیش اینه که این دلیل عقلی رفن اساسیش علم است. علم اجمالی به احکام کرده شما از علم اجمالی احکام طریقش شدهتون استفاده اثبات رو کنید یه جا باید بشه یعنی به این مقدار کافی نیست مثلا بیاید بگید ما وظیفمون عمل و احکامه لیکن الان شون ربارات هست وظیفه عوض شده به جای عمل و احکام عمل برامه واسه اینجا بیلید یه چیزی باید اضامه بکنید با به استعداد تبدل حکم شده حکم ما اساساً عمل ورسان بود اما الان اون حکم عوض شد وظیفه ما عمل در این شد این با عقل اثبات نمکنه سیره مونیشرر اثبات نمکنه سیره اوغلان اثبات تبدل حکم کنه یا بگید مؤدای اماره معداری خبر این میشه حکم الله واقعی در ما خب این با طریقیت صرف نمیشه ها گفتین طریق صرف اگه طریق صرف علارت نمیکنه اگر اون معهداح و خمال هست اگر نیست ها این که خبر سقه بیاد عوض ممی کنه طریق سقه شنش هم اینه مثل آینه یک انسانی که مثلا صورت جایی خودسات معنی تو آینه نگاه بکنه همونو می بیدن ایچی دیگه شکل جور دیگر جور دیگر ایچی دیگه آینه که ایچ کاری نمی آینه که بیاد عوض بکنه لذا کسی که میخواد تمثب بکنه به دلیل دلی ابتدا این طریقه صاف نیست با یک چیزی بهش اضافه بشه و الا اون رو اساسی علم اجمالی شما به افکام و لذا ممکن است یک کسی تقریب بکنه این علم اجمالی نتیجه بگیره ما به خصوص خبر سقه عمل بکنیم یا خبر صحیح یا خبر صحیح و موسط مثل آقای خویی خوی به صحیح و موسط عمل بکنیم چرا؟ مرحوم صاحب مزارک به خصوص خبر صحیح عمل میکنن صاحب مزارک به خبر مؤثر عمل نمیکنه یا به صحیح و مؤثر و حسن عمل بکنن که ادهی از بزرگان بودن سابقا نمی توضیح عرض کرد خوب این مبناش چیه؟ بگیم اون علم اجمالی ما با این وسیله منحل بشه یعنی باید این ادعا رو بکنیم و بگیم فقط منحل سر بگیم به اولاد سه تا احتمال هست یک علم اجمالی ما به عمل به مغمونات منحل بشه یعنی دائره رو بهش عمل بکنیم دایره مشتوقات و مغمونات عمل نکنیم این رأی مخطق قومیست قدسالله این علم اجمالی ما بیدیم راه دیگه علم اجمالی ما با تبریز در احتیاط منحل میشیم یعنی ما فرض کنید علم اجمال این احکام هست فرض در کتاب و جواهر حتاب کردن شهست هزار فره کتاب و جواهر لومه رو نزدن نوشن شهر دامه دوازده هزار فره حالا ما در شهست و سین هزار فر ایتید لکتاب جواهر هست علم اجمالی هم واقعی خب این رعیه همجور احتیاط بکنید تا جایی که اصلاحره ازاز آمد تا اصلاحره ای احتیاط مثال پ یک مسلک حجید خبر که همین مسئله یه برست حالا اون درجاتشم فرمان یک که هم حجید زن پس اون علم اجمالی که شما ادعا میکنی این طور نیست که در واقع اثبات حجیت خبر رو به اینه بکنه مثلا یک خبر عبد حجید خبر سه رو حجید خبر سریع و موسط حجید سه طاعت اینا رو اثبات نمی کنه. این اصل مطلب اشکال دو همی که بر این علم اجمالی و این تریده هست دو راه متفاوت هست یک راه راه است که اصل این علم اجمالی ما خود به خود منحل میشه به خاطر اینکه ما نیاز نداریم برگردیم به خبر یا بزن ما اصولا برمیگردیم در افقاق شریعت به اونهایی که تلقیه و قبول شده اصلا با اون حرفا برمیگرده این راه سیر مرتضی ابن ادریس فرسن صاحب مجموعه برد این کسانی که از اصحاب ما قائل هست در جدید اونا راه رو برای وصول به افکام شرعیه عبارت از مسئله تلقیه و قبول یا به اصطلاح اصولی نمیشن اجماع رو از اجماع تلقیه و قبول ما هر حکمی که تلقیه و قبول شده خود تو داره مضمونات باشه یا مهمات باشه میخواد خبر سهی برسته لحظ بکنه یا خبر ضعیف کنه خبر زعیب ما با تلقیه بحث ها دیگه اصولا نیازی این بحث نداریم و رضا از کردیم چرا رو مراره مثل مرحوم سید موتزا اجماع رو در قبال خبر آورده از اصحاب ما در این مسئله این مسئله از قرنه چهارون به این ور شکل گرفت از اول قرنه چهارون توضیحش دادیم به این ور شکل گرفت سه مبنا دارن خوب در قطع این آشنایی با این مبانی از خواب پیگمونه یک کسانی گفتن خبر خبرعمل بکنیم به اجماع کار نداریم به طلبی کار نداریم این مبنای صدوق و قومی هست مثلا مبنای قومی ها اینه بل ازا چرا رز از که شما در عبارات صدوق یک جا تمسک به اجماع می گاره حالا به خلاف اصل امامیه تو این انتظار نگاه کنید هر صفحه‌ای که چند تا مسئله داره تکرارش واسه مثلا 5 تا مسئله داره هر مسئله تمسک به اجماع میکنه در هر صفحه چند بار اجماع بعضی صفات که بیشتر از چند تا مسئله گفت تمسک به اجماع میکنه به خلاف معلوم شهره یک مبنای شهره صدوق و هم دو مبنای ادهی از بغدادی ها مثل مرمون سیده اینا دقیقا به عکس مختبه قوم به خبر عمل نمی کنن به تلقیق قبول و اجماع عمل نمی کن. سه مبنای مرمون شیط توسی شیط توسی آمند در حقیقت سرکت بین دو مبنای قوم و بغداد چند بگنه لذا تو این خلاف زیاد دیدیم مثلا یه دلیل اونا اجماع الفرقه و اخبار ها در اون اجماع الفرق مال بغداده رماریات ما مال قم و طبعا تدریجا ما بعد هم اذهی از اصحاب ما آمدن این اجماع ولی که از مؤیدات و شواهد قرار داده در اکثر مبانی مرحوم شیخ کمی ابهام داره یک نواخ نیست حالا شاید مثلا در خلافش اینطوری تو دیگه به هر حال نوع ابهامی در مبانی یعنی اون دقیقه دقیقه نمیتونیم مبانی ایشان رو مرزبندی بندی بکنیم به هر حال پس این مطلب هست که راهی رو که امثال سیده محتضا رفتن این است که نوبت به این دلیل عقلی در باب حجیت زن یا کلان نمیرسه ما در فقط تلقیه به قبول ازم کردیم این تلقیه به قبول سیده محتضا ریشهاش برمیگرده به زمان حسینه نروح نوبختی حدود 100 سال قبل سهر در بغداد چون حسین بود در ایام غیبت سبرا تصمیل کتابی رو بینیسه که بین مکتب و قوم و بغداد جمع بکنه یعنی به عبارت اختار یک نوع اجماع دارست رو کنه این اجماعاتی رو که مردمه در کتاب بیشتر این این موارد در کتاب آمده این منشأ شد دو سه در بغداد و مبانی که اتخاذ شده به عنوان اجماع بنشیه عمل بکنم غالبا مراد شهید مظفر از تلقی و قبولم اینه یعنی اونجا هم کلمات ایشان ارهام نداره که آنچنان خیلی ابهام داره اونم با مراجعاتی که ما کردیم بر ما واضحه کاملا یعنی حالا این 20 درصدش نیست نقلای شهید اما معظم موارد نقل ایشان یا اجماعات ایشان یا اجماع شیخ برای ما لازه ابحامی دارش الان دهن موجود نیست پس بنابراین یک راه هم این بود یک راه دیگر راهی بود که ماها رفتیم و از این مجموعه, مجموعه، کلماتی که مثل مقام ناینی دارن و اون این کس که اصولا انصداد باب علمی نشده در فرم یعنی در فقه اسلامی به برکت اولا در سر رحم امور خود قرآن بعد روایات فراوانی که از رسول الله بر اثر مختلف نقل شده بعد روایات اهل بیت صادره خود اون روایات اهل یک راههای خاصی داره برای رسیدن به صحت و صقم اون روایات و تلقی به قبولیش بدون سرزوار از این انصافا یعنی ما وقتی مجموعه شواهد ما شواهد رو به سه دسته کلی تقسیم کردیم مفصل اخیر توضیح مفصلی همین اخیره هم عرض کردی توضیح رو تکرار بکنیم به طور کلی شواهد رو دوشه از زوایای مختلف بررسی کرد به طور کلی از سه زاویه اساسی یک شواهد اغلایی که از پر مهمترین شواهد اغلایی و ساقت راوییست شون در اغلا اگر راوی و سقه باشه خب این صاحبا شواهد بسیار است. دو شواهد دینی که از همش مهمتر ادارت راوییست اینجا ها کنفراز اینجا ها فاس اون به و سه شواهد مذهب که از همش مهمتر وجودش در کتب مشهوره بین ازها و نقل مشایخ و تلقیه و قبول این سه تایف است. هر کدوم باز یه ارگی داری پس یک شواهد اغلایی داریم. یک شواهد دینی داریم. یعنی برمیگرده به اسلام به طور کلی به این شواهد دینی علمای سنت اهل سنت هم دارم ما هم داریم فرق نمی کنیم و یک شواهدی هم از این شواهد تلیه از درهی بگید این مخواهد بینمه کتاب از سنت هست کیفیت اینها میکن به طور کلی مرز بندیه کلی چون هم شواهد مذهبه چه از کرده؟ مثلا شواهد مذهب در قوم تلقی مشایخ بود وجودش در کتب معتبر بود در اصول بود در موسن بود تلقی مشایخ بود این تقوم بود توی برداد تلقی فتوا بود و این که اصحاب اونو قبول بکنم، ما در نظر رو هر دار میگیریم چیتا دا این که قبطنها رو بگیریم برداد تلا مجموعه شواند مذهل رو اخواری ها میگن در کتب معتبره باشه مشکوله باشه اونو همه هم بگو بی. اخباری ها خصوص کتاب مشهوره و لذاه هست که مرحوم صاحب وسائل از مقدار زیادی کتاب نقل نکرده نه اینکه این کتاب ها رو ندیده چون اونها مشهور نبودند. و از کنه مرحوم حاجی نوری مستدرک نوشته که خیلی از زحمت کشیده نصافه لیکن حاجی نوری از کتاب های مشهور نقل میکنه این کتاب که ایتون از نقل کنه مثلا مثلا مساشریه فقور پیش ساور و بوده حجت نبوده و رضا عرض کنم انصافا اسم کتابشو مستدرک گذاشته خیلی فرمین نید استانها مستدرک به چی گفته میشه که مثلا به نظر من این رواید حجت بوده من ذکرش نکردم نه اسم اون حجت نبوده که ذکر نکرده و توقع ما هم این بود تو ای که من در آقایین در مستدرک نگاه کردم چه اول خاتمه چه اول خود مستدرک جاهایی که مزان مزان این مطلب بود من در مستدر نگاه که حاجی نوری توضیح بده که چرا شما اسم کتاب کنون مستدرگ رو داشتیم مستدرگ میتازن دقیق چون این کتاب ها پیش ساحب وسائل بوده اعتبار مداشته من از سرم مرحوم ساحب وسائلی هاشی داری لیکن چاپ آرولویت اون هاشی آمده در چاپ مرحوم های رنبانی نمیده در چاپ آرولویت ربانی جلد و تو خاتمه واسائل ایشون میگه کتاب مشهوره و کتاب غیر مشهور نغلهی حاشیه داره این هاشیه منو حاشیه نوری ندیده چون هاشیه اصولن چاپ نشده بود نبوده تو اون هاشیه مرحوم سال و سال تا کتاب میشه به اول اسم دار که اینان بودن که من نقل کردم گفتم پس این فوت نداره سال و سال یه احتمال پیش فقط این کنه اصلا فوت بشه. یا اعتقاد ندوده اصلاoverline این خودت قضیه این اینم یک معنا ما عقیدمون که انصافا هم هر خوبیه یک روایت شوف قد مثلا از دو عوادی باشه یا کتاب کافی باشه قطعاً فهم می‌کنه نمی‌شه دیگه دائم نداریم بگیم شاهد یکیه ببین مجموعه شواهد تاریخی که شواهد عقلایی میشن مجموعه شواهد کتاب و سنت و ادارات روایی که شواهد دینی میشن مجموعه شواهد مذهب عمل از خواب و قبول نقل مشایخ وجودش در کتاب مشهوره این اسمشون شواهد مذهب ما با مجموعه این شواهد حتاب بکنیم بس اینه با مجموعه این شواهد که بسوق به احکام الهی پیدا بکنیم به نظر ما کافیه به از این دلیل عقلی برمو میگرده اصولاً ما یک اعتقاد خاصی داریم یکی از این که این شریعت مقدسه جز به عنوان شریعت خاتمه حساب میشه خاتم نویین خاتمیت یک امر لحظی نیست چند باره از کردن یک امر واقعی یعنی شریعتی خاتم میشه که داره خصوصیتی باشه ظاهرا غیر از خصوصی حالا که چون بحث خاتمیتی میخوام بشن چه خصائصی موجبه ظاهرا یکی از موجبات خاتمیت این شریعت مقام اصفاتشه یکی از که شریعت خاتمه شده دیگر یعنی شارع مقدس مطمئن بوده با این طرق با کتاب با مجموعه اهل بیت واره و با رواز بیت و وضعی که پیش آمده این این شریعت خاتمه به این عنوان باشه که یسره برای کل بشرد در کل زمان در کل مکان با هر فکری با هر مستوایی با هر عمری از بچه کوچیک تا پیرزن پیر مردم مثلا 100 ساله و در جمیع نقاط روی کره زمین و تا روز قیامت این اتخاذ به این صورت طب بود طبیعتش اینه کلی <تصفح> بعد شریعتی نفاذ بده یکی از نقاط این شریعت به خاطر مقام اثباتشه یعنی مناسب با این شریعت خاتمه باید اثبات و طرق اثبات این احکام وجود باشه و یه حدیثی که هر شد زیاد سینده باشین حد و عن بنی اسرائیل ولی آخرت این حدیث صدری داره صدرازهی داره خلاصه صدرازهی داره چون نمیخواهم باردون بحث بشم خلاصهش اینه که در شریعت حضرت موسا در بنی اسرائیل نوشته درستی موجود نیست راه اثبات نداریم از هر چی خاصی بهیم چون نیمتونه که شما بگید این درست عجیبی. عجیبی ای این باطلی خیلی عجیبی که یاده این حدیث رو اندنی اسرائیل الاخره هم یک صد و داره و درست هست اجازات ته هم بره راجع به اسرائیل مقام اثباتش واضح نیست نوشتا نیست راه هایی که شما بگید این کلام درسته این کلام باطلی شما نداردون تو بنی اسرائیل هم ما در شریعت ما هست. این ذهب داره اما در این دین مقدس هر زده فکر و نگاه هر کس اون بنی اسرائیل از وریفه هر چی به مرکز زمین خصوص گفت همینجاست اون حساب اونجا شما از برای هرچی هر خبری تو کسی این درست انباره خیلی انرژی بده قریبی بود هم مت اول میگه شرعیت به نظرش که شما آزاد نیستین هر چی به مثل این آقاون مثلا برای شما حجیات من نره کرد شما زن با حق پیدا که ایم بشون حجیات یعنی اختلاف این شریعت خواهد من است. ولی ازا به نظر ما دیگه متعرض بحث ذیل عقلی و اینها نمیشیم ما اون راهی رو که سید محتضان رفته قبول نمیکنیم، کنیم لیکن اجمالا معتقدیم مجموعه شباه به حدی ما در اکثر احکام وصوب پیدا نمی کنیم این نیست که وصوب پیدا نشه. در درجه اول خود قرآن و جاهایی که بسوق خاص فیدارشه رجوع به اطلاقات کتاب یا اطلاقات سنت یا عمومات کتاب یا عمومات سنت و بعد ذالک کله رجوع به اصول عملیه خصوصا این خصوصا بعد از مردم وحیل بهبهانی ایشان آمد اثبات کرد رجوع به اصول عملیه رجوع به روایانه نقطه دقر کرد. چون اصول عملیه که قبلا مثل ابن درزیر سمانسی که عقلی حسابش میکردن نزا اخباری ها شده نشده هم؟ قیمه از شکلت کارست در نقطه همون استثار همون براقر اینا رو چون عقلی حساب میکردن اخباری ها هم نکردن به برمانی آمد گفت نه ایران شرعیه خود این اصول عملیه هم شرعیه اگر اونها هم شرعی شد نسیده شما در تمام موارد به شرعی موارد دیگه اینطور نشد که در بعضی از موارد به عقل مراجعه بکنید که نیاز به این دلیل عقلی باشه اونجایم که شما اصول عملی جاری میکنه اونجا هم شرعیه اونجا هم شارع مقدس درموده با این تقریب روشن شد که یک سیره متشرعه اجمالا ثابته سیره اغلای اجمالا هست بو عنوان تعبد نمیشه قبول کرد و مجموعه ادله ای که به عنوان ذیله هم آوردن این ذیلی ازلهی نفس قصور داره احتيازی اون بحثا نداره که مشغول صحبت بشیم واجبه انصداد و غیر انصداد این راجع به این مطلب ان فردا متعرض میشیم به جابریت و کاسریت چون محمود مستاد اینجا متعرض شدن آیا اول مشهور جابر و کاسر است خلال بحث حساب اشاره کردیم بعد از این بحث ان الله یه دو تا مطلب برمون استاد و نایمی در ذیل آیه نبر گفتن بعد ببین بعداً ذیل آیه نبر اینکه اخبار رو به اینها اینا اون بحثی بعد از اونجا میاد این دو تا نکته هم تمام بشه چهار تا نکته بعد از این بعد میگیم بعدله کسانی که نافی حجیت خبر اون بعد با این ترتیب بحث حجیت خبر تمام میشه صلی الله علا.